از تمام طول مسیر تا جایی که قرار گذاشته بودند حتی یک کلمه حرف نزدیم. او با اخم‌هایی در هم روبرو را نگاه می کرد و من ناچار از پنجره بیرون را نگاه می کردم. اول جایده چالوس قرار گذاشته بودند. امیر قبل از ما رسیده بود. از دور دیدمش که کنار جواد و پسر دیگری که من نمیشناختم ایستاده بود. و صدای خنده از ته دلش تا چند متر دور شنیده میشد همزمان با ما آقا هم رسید. به محض اینکه امیر به ماشین رسید محمد با قیص گفت بالاخره نتونستی رو دست پسر کنی؟ نه، هرچی به در گفتیم که دیوار گوش کنه انگار نه انگار. بروی خودش نیورد. من هم به خاطر جوا چیزی نگفتم. هرچی باشه فامیلشونه. با نزدیک شدن جواد حرفشان را قطع کردند و من فهمیدم هر دوشان در مورد آن جوانی که نمیدانستم کیست صحبت میکنند و از آمدنش دل خورند. بعدا فهمیدم که اسم آن جوان خسرو و از اقوام ماتری جواد است که از قرار روز قبل از مشهد آمده بود و علیرغم میل همه مجبور شده بودند او را هم همراه بیاورند. نمیدانستم امیر و محمد از کجا و کی او را می شناختند. ولی معلوم بود که چشم دیدنش را ندارند، که البته یک خورده که گذشت فهمیدم که چرا کسی از او خوشش نمی آید. توی شلوغی سلام و علیک و احوال پرسی ها، من که بیشتر با فاطمه خانوم و آقا سرگرم بودم، مجبور نشدم سرگرزی ها تحویل بگیرم و به یک احوال پرسی کوتاه کردم. توی این فرصت مردها تصمیم گرفته بودند که قسمتی از وسایل را توی ماشین ما که خالی بود بگذارند. وقتی کارشان تمام شد چون آقا رزا اصرار داشت که زودتر حرکت کنیم همه به سمت ماشین ها حرکت کردند. و فاطمه خانم بروی بسیار خوش و اصرار سرعیه را به ماشین خودشان برد. کنار ماشین خود رسیده بودم که خسرو جلو آمد و من تازه از نزدیک در ظاهرش دقت کردم. قدی نسبتاً بلند داشت و موها و چشم‌های روشن. ظاهرش بد نبود، اما نگاه و رفتارش دلشین نبود. مخصوصاً نوع نگاهش جور خاصی بود که آدم را معذب می کرد در حالی که نزدیک میشد چند بار پشت سر هم گفت: "به به، مبارکه. خانم محمد آقا تبریک. با کمال پررویی و قیهانی به من زده بود من که از نوع نگاه و رفتارش جا خورده بودم برای فرار از نگاهش سرم را پایین انداختم که محمد که معلوم بود حواسش بوده از پشت سر کنار من رسید دستش را پشت شانه ام گذاشت تقریبا توی ماشین هلم داد و با صدای بلند بدون اینکه جواب خسرو را که حالا او را مخاطب قرار داده بود بدهد گفت امیر احول پرسی باشه برای بعد سوارشین داره دیر میشه از رفتار محمد و اینکه حتی برای حفظ ظاهر به خودش سهمت نداد ملاحظهی خسرو را بکند تعجب کردم. دلم میخواست بدانم چه سابقه ذهنی از او دارد که اینقدر با انزجار رفتار میکند، ولی از آنجا که با هم قهر بودیم امکانش نبود. امیر کنار ماشین آمد و به شوخی گفت: « محمد به خاطر مهمون عزیزمونه که انقدر سرحالی یا از دست خواهر گرامیه بنده است؟ محمد با بیزاری گفت اگه به خاطر رزا نبود برنامه رو میذاشتیم واسه هفته بعد. آخه این یه دفعه از کجا پیدا شد. امیر با خنده گفت حالا که اومده؟ آشکش که خاله است. فکر نمیبینیش. خود جوادم از دستش گفریه ولی چاره ای نیست. محمد در حالی که به خسرو که باز به سمت ماشین ما میآمد اشاره میکرد گفت برو دوباره داره میاد. و خودش فوری حرکت کرد به نظرم آمد خود رو باز هم لبخند به لب و دست به کمر نگاهش به ماست محمد عصبانی گفت ما عروسی نمیخواستیم بریم میخواستیم؟ خودم را به آن راه زدم و پرسیدم یعنی چی؟ فکر کردم این بحانه میشود برای حرف زدن. اما محمد گفت یعنی که این رنگ و روغنا رو از صورتت پاک کن همین تند و تیز و گزنده گفت و ساکت شد و دوباره راه را بر حرف زدن بست میفهمیدم از چه عصبانی است منتها به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که سر صحبت را باز کنم برای همین دوباره پرسیدم کدوم رنگ و روغن؟ یک لحظه برگشت با نگاهی تند و غذبناک و بعد بدون اینکه چیزی بگوید دوباره جلو را نگاه کرد و من مجبور شدم که حساب کار خودم را بکنم و ساکت شوم. رنجیده و سردرگریبان رویم را رو به طرف پنجره کردم و در فکر فرو رفتم و او ضبط را روشن کرد. یکی از همان کاستهایی که من بیزار بودم انگار غم عالم میآد توی دلم شروع به خواندن کرد آن وقتها من از شنیدن آن نوع شعر و موسیقی دلم میگر و خلقم تنگ می شد و محمد خوب این را میدانست. معمولا با من که بود آنها را گوش نمیکرد ولی حالا فرق میکرد. قهر بودیم و من اجبار مجبور بودم گوش کنم. پس سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به جاده خیره شدم. خواننده با صدایی هزین که به گوش من ناله میآمد میخواند. هرکو شراب فرغت، روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد، قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شطور نبندد محمل به روز باران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم، الا یکی از هزاران. بیشتر از همه صدای نی و یک ساز دیگر که نمیدانم چه بود با اسمش شد دل آدم بگیرد. دنبالش اش خاننده این دو بیت را لاعقل تند خواند و شاید به همین علت همین دو بیت به دلم نشست. ساعتی به روزگاران مهری نشسته بردل. بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت شرح اینقدر کفایت. باقی نمی توان گفت الا به گذاران برای اولین بار در مفهوم این چند بیت دقیق شدم و به فکر فرو رفتم فکر کردم راست میگوید مهری که توی این مدت توی دل من رفته واقعا یک روزگار شاید اندازه عمر من طول بکشد تا مردت فکر کردم یعنی آن وقت از دلم بیرون می نه، مطمئن بودم که اینطور نیست. آنقدر با خودم کلنجار رفتم و توی فکر غرق شدم که نفهمیدم که خوابم برد. وقتی بیدار شدم که ماشین ایستاد. کنار جاده نزدیک صد بودیم. آقا رزا و امیر دم ماشین آمده بودند و با محمد صحبت می کردند. حرف سر این بود که امیر می خواست کمی استراحت کنند. ولی آقا رضا و محمد ترجیح میدادند تا جایی که اسمش کجور بود یک سره بروند. آنطور که آقا رزا می گفت راه کجور از مرزن آباد میگذشت که حدود دو ساعت دیگر با ما فاصله داشت. بالاخره هم حرف آقا رضا و محمد شد. خسرو داشت از ماشین پیاده میشد شد که محمد باس و امیر گفت بود و رفیقت داره پیاده میشه. و خودش فوری راه افتاد. باز سکوت بود و اخمهای در همه او و دل گرفته من. عواسط مرداد ماه بود و هوا گرم. از تشنگی مجبور شدم حرف بزنم. من تشنمه یه جویس آب بخورم. بدون اینکه حرف بزند یا رویش را برگرداند دستش را برد و از پشت صندلی خودم بطری آب را برداشت و به دستم داد. دلم میخواست بطری و هر چه جلوی دستم بود خورد کنم. از این سکوت کشنده و رفتار دهندهاش جانم داشت به لب میرسید. خب حال من یک حرفی زده بودم، یک غلطی کرده بودم، یعنی تا کی میخواست به این وضع ادامه دهد؟ از هرس همونطور بطری به دست به او خیره مانده بودم. از خفقان حتی فراموش کردم که آب بخورم. یک لحظه برگشت و گفت اگه گرسن ای همون پشتندویشم است گرس هم نبود. دیگر حتی تشنه هم نبودم. فقط داشتم از این اوضاد دق می آوردم. بدون اینکه آب را بخورم بطری را همان وسط ماشین گذاشتم و با سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و فکر کردم. حماقت کردم. اگه میدونستم تا این حد میخواد به بازی ادامه بده نیومده بودم بهتر بود. هر وقت ماشین امیر یا آقا از کنارمان رد میشد، صورت‌های صورتهای همه خندان و شاد و سر حال بود و من بیشتر از وضع خودمان رنج می بردم. بلاخره آن مسیر طولانی دو ساعته که به چشم من دو قرن آمد تمام شد و از مرزن وارد یک جاده باریک فرعی شدیم. این بار دیگر آقا صبر هم نکرد که از دیگران برای ماندن یا رفتن سؤال کند، با سرعت رفت و ما هم به دنبالش جادهٔ با صفایی بود پر از باغهای میوه و بسیار خلوت انگار غیر از ماشینهای ما ماشین دیگری توی آن جاده نبود به ندرت ماشینی از روبرو میآمد هرچه امیر با بوغ و چراغ سعی داشت آقارزا را نگه دارد آقارزا با دست به جلو اشاره میکرد و با سرعت میرفت بعد از چند تا پیچ، در کمال تعجب یک دفعه آن راه سرسبز و باسفا و جنگلی به راهی خشک و کویری تبدیل شد. امیر هر طور بود بلاخره آقا را مجبور به ایستادن کرد و بعد در حالی که از ماشین خندان پیاده می شد به آقا گفت آقا رزا، پنج ساعت بکش ما رو آوردی اینجا؟ خب چرا اول جاده سب نکردی؟ آقا گفت پس تو چی میگی من آشقه گشت و گذارم و این حرفا به سر صبر داشته باش. مثل این جاده توی عمرت ندیدی. اول دیدی چه با بود؟ حالا اینجا رو هم ببین. داریم نزدیک کجور میشیم. بعد در حالی که با سرعت حرکت میکرد گفت. دنبال من بیا. بعد از کجور رو هم ببین. چه امیر داد و فریاد کرد آقا رزا صبر نکرد. و به ناچار دوباره راه افتادیم هر بار امیر به کنار ماشین ما می به مسخر اطراف را که درست مثل دشتهای های بود به محمد نشان می داد و سرتکان می داد. شاید حدود بیست دقیقه یا نیم ساعت که از کجور گذشتیم، دوباره بعد از چند تا پیچ یک دفعه جاده دوباره سرسبز و جنگلی شد. هرچه به طرف ارتفاع می رفتیم، هوا خونکتر می شد و جاده پی نهایت زیبا و ما حیران و متحجب. تا اینکه در پیچ آخری که فکر می کنم ترین جای جاده بود، هوا مهالود شد و بسیار خونک. این بار دیگر خود آقا رزا ایستاد و همه پیاده شدیم. جایی به آن قشنگی در عمرم ندیده بودم. برایم باور کردنی نبود که بعد از آن جاده خشک یک دفعه به چنین جایی برسیم که از سرما ما دندانهای آدم به هم می همه زخ زده و خوشحال بودند و از زیبایی آنجا و حسن سلیقه آقا تعریف میکردند و آقا خندان سر به سر امیر که به قول خودش از بس ماتش تشبرده بود لال هم شده بود میگذاشت و تعریف میکرد که قبلاً با دوستهایش به این جاده آمده و به خنده گفت محمد دقت کردی این راه هم مثل زن گرفتن میمونه؟ اولش قشنگ و رویایی بعد به کویر میرسه و خشکی. با اعتراض فاطمه خانوم فوری در حالی که به بقیه چشمک میزد گفت. البته خوبش اینه که کویرش همونیه خورده است. بعد دوباره رویاست و اینجا بهشت. مگه نه محمد؟ حالا تازه بعد از اینجا نرسیده به علمده یه آبشار هست به اسم آب پری میبرمتون تا امیرخان دیگه هی قرقر نکنه و چی به کوبین راه اومده. امیر با خوشخلقی گفت همین حالا ما در وست چاکری آنها مشغول بگو به خند و شوخی بودند که من آرام تا کنار جاده رفتم سر دامنه ایستادم و سر و شیبی را نگاه کردم قشنگ ترین بود که در همه عمرم دیده بودم مه که به طرف بالا می آمد لابلای درخت هایی که سر در هم فرو برده بودند منظری مثل خواب و رویا داشت تنهٔ درختها خزه بسته بود و کف زمین پر از گلهای وحشهٔ بینهایت زیبایی بود که همه جا را پوشانده بود شبنم روی گلها و خزه ها و برگ درختها برق میزد و رطوبت هوا و مه رقیقی که با این منظره درآمیخته بود درست مثل بهشت مجسم جلوی چشمهایم بود اولین بار بود که زیبایی طبیعت نفسم را بند میآورد وای که اگر با محمد قهر نبودم اگر دلم این قدر گرفته نبود چقدر میتوانستم لذت ببرم. چقدر دلم میخواست کنارم بود؟ همه وجودم صدایش میزد ولی پشت به آنها تظاهر میکردم که توی عالم خودم هستم از سرما میل همانطور که دستهایم را بغل کرده بودم قدم زنان راه افتادم. از کناره تا سر پیچ آرام آرام رفتم. دلم میخواست توجه محمد را جلب کنم. نگرانش کنم و مثل همیشه چشمش به دنبالم باشد. فکر میکردم الان است که صدایم بزند. الان است که نگرانم شود. الان میآید، ولی خبری نبود. فقط صدای خنده‌های آنها بود که بیشتر داغ دلم را تازه می‌کرد. خدایا، دلم می‌خواست زار بزنم. بی اختیار همه ی قذب و قصه و نفرتم را متوجه جواد و سارا میکردم. می‌کردم. فکر می‌کردم اگر این لعنتی‌ها نبودند، اگر به خاطر اینها نبود این طور نمی‌شد. آنها را نفرین می‌کردم و برای محمد خط و نشان می‌کشیدم. و مثل مار زخمی به خودم میپیچیدم دلم میخواست محمد را صدا کنم از او معذرت بخواهم و هر طور شده مجبورش کنم که آشتی کند ولی نمیتوانستم مسیر و راه را آنقدر کج رفته بودم که حالا میدیدم و فکر میکردم عذر خواهی خار و بیمقدارم میکند مدتها بود که از رفتارهایم پشی خسته بودم اما انگار با خودم همرو در بایستی داشتم و بدبختانه چون از طرف محمد هم انعطاف و نرمشی میدیدم راه برگشت را سد میدیدم. با خودم شرط میکردم این دفعه آخر است این بار که آشتی کردیم دیگر رفتارم را عوض میکنم و نمیگذارم کار به اینجاها بکشد و خبر نداشتم بار دیگری در کار نخواهد در افکارم غوطه میخوردم که صدای خشخش برگ‌ها را شنیدم. از خوشحالی نزدیک بود فریاد بزنم. مطمئن بودم که محمد است. ولی خوشحالیم چند لحظه بیشتر نپایید. مهناز، برای چه خرج تو سوار کردی؟ امیر بود. انگار یک سطل آب سرد رویم ریختند. وارفته گفتم. هیچی دارم تماشا می کنم. مگه اونجا دیوار کشیدن؟ هیچ نگفتم. بغزی تلخ گلویم را گرفته بود. امیر در حالی که نزدیک تر شده بود پرسید. مهناز، اوقات شما دوتا بر چی تلخه؟ درست نیست اینا مهمون همونن. بعد به شوخی اضافه کرد. در همین همینقدر که محمد فهمیده سرش کلا رفته بسه. لازم نیست که خوهرش اینام بفهمن. لازمه؟ حسلگی شوخی نداشتم. با حوصلگی گفتم. چیزی نشده. گفتم که دارم تماشا میکنم خودت خودتو لوس نکن. پس این قیافه یه سرگه یه چیه به خودت گرفتی؟ بیا بریم. دستم را گرفت. دستم را از دستش بیرون کشیدم و گفتم. نمیام. تو برو من خودم بعدم میام. بیا برین پیش شوهره. زن بدون شوهرش نمیره تماشا. به روی خودم نیاوردم و باز پشت به او از دیگه سر و شیبی رفتم. امیر یک دفعه در حالی که بازوهایم را از پشت سر گرفت حالم داد. وحشت زده و عصبانی گفتم نکن امیر میترسم. اه جون امیر راست میگی؟ و دوباره حالم داد. چشمهایم را بسته بودم و در حالی که میخواستم به روی خودم نیاورم ساکت شدم امیر دوباره پرسید میای یا نه؟ نه نه؟ خیلی خوب کمی بیشتر حالم داد و من حس کردم دیگر کاملا لبیه در رأم. جرعت اینکه اینکه چشمم را باز کنم نداشتم با التماس دوباره گفتم <تصفيق> امیر تو رو خدا ولم کن یا اخماتو تو باز میکنی میای یا مجازات؟ هر سعی میکردم به طرف عقب برگردم دستهای امیر مثل گیره آهنی نگه هم داشته بود و با هر تکانی که به من میداد بنده دلم پاره میشد دفعه آخره میای یا نه؟ چشمهایم را محکم به هم فشار میدادم و از وحشت دست و پایم کرخ شده بود. می دانستم که محکم نگه هم داشته. ولی با این همه از ترس داشتم میمردم بعضی وقتها از این همه ترس بودن خودم حالم به هم می خورد. با لحنی چاپلوسانه و ملتمس گفتم. <تصفيق> امیر خواهش می کنم. من از بلندی می ترسم. خودتو لوس نکن. من محمد نیستم. یک تکان محکم دستایش باعث شد بی اختیار بزنم. امیر فوری فریاد زد. چیزی نشده داریم شوخی میکنی؟ ولی محمد با قدم تند نزدیک شد و پرسید چی شده امیر؟ صدایش را شنیدم ولی جرأت نداشتم چشمهایم را باز کنم امیر گفت هیچی دارم مجازاتش میکنم محمد جدی پرسید حالا چرا اینجوری؟ امیر با خنده گفت مگه رنگشو نمیبینی؟ واسه اینکه تنها وسیله مجازت اینجا اینه. دوباره محکم تکانم داد که باعث شد چیقه بلند دیگری بزنم. محمد کمرم را گرفت و مرا از روی سنگی که امیر بزور رویش نگه هم داشته بود عقب کشید. و من وارفته افتادم توی بغلش. امیر همونطور که میرفت گفت پس خودت مجازاتش کن. خود. بیچاره، یه خورده ارزه داشته باش هی hey, نازشو میکشی که انقل لوس شده دیگه. بعد خندان دور شد. از جایم تکان نخوردم. همونطور که به او تکیه داده بودم ایستادم. گرمای تنش بعد از این مدت طولانی چقدر شیرین بود. دلم نمیخواست از او جدا شوم. ولی باز رویم رو گرفت. برم گرداند به سمت خودش و توی چشمهایم نگاه کرد. نگاهش خسته و رنجیده بود. از هیجان و سرمادندان هایم به هم میخورد و تحمل نگاه ناراحتش را نداشتم. وقتی آنطور نگاه هم میکرد، انگار کسی قلبم را میفشرد و از قصه نفسم بند میامد. دوباره به خودش نزدیکم کرد و پرسید. سردته یا ترسیدی؟ هر دو سرم روی سینه اش بود و او در حالی که سرش را خم کرده بود چانه اش روی موهایم بود و آرام نزدیک گوشم حرف میزد انگار از سفری دور برگشته بود دلم میخواست ساعتها همونطور توی آغوشش بمانم بلکه رنج چند روز و چند ساعت گذشته را فراموش کنم همونطور آرام پرسید خب حالا میگی چی شده؟ تو چرا چند وقت عوض شدی؟ خودت میتونی چقدر فرق کردی؟ حرفی برای زدن نداشتم؟ چه می بگویم؟ بگویم که حسادت دارد خفهام می کند؟ التماس کنم که دور دوستهایش و کوه و جلسه و غیره را خط بکشد یا اسم جواد و سریا را دیگر نیاورد؟ یا اصلاً به خاطر رفتارهای خودش طلبکار شوم وای که اگر به جای خفقان گرفتن واقعیت را گفته بودم چقدر اوضاع فرق می کرد. چند لحظه صبر کرد و بعد آرام از من جدا شد. توی چشمهایم که با حسرت نگاهش می کردم خیره شد و یک دفعه مثل کسانی که کلافه شده اند به من پشت کرد. چند قدم دور شد و در حالی که سرش را تکان میداد و با دست پیشانی و شقیقهش را لمس می کرد دوباره برگشت و به طرفم آمد و با ناراحتی گفت. مهناز، من دیگه دارم خسته میشم. این بد اخلاقیه ای تو که اصلا ازشون سر در نمیارم این سکوت تو این رفتارا. مهناز، من از رویا شروع کردم. نمی مثل این جاده به کویر برسم. حس این که ممکنه اشتباه کرده باشم داره منو بیچاره میکنه میفهمی؟ عشق توی چشمهایم حلقه زد و درمانده گفتم همش مقصر منم؟ تقصیر همه چیز کردن منه آره؟ در حالی که از هرص انگار کلمات را می و عدامی میکرد گفت: نه اصلا مقصر منم خوبه ولی برای چی؟ مشکل کجاست؟ حرف سر چیه؟ من نمیدونم تو روشنم کن. مثل بچه های لجباستندان هایم رو به هم فشار دادم و گفتم. من بگم تو که به قول خودت از چشمم تا تهی وجودم رو میخونی. حالا چرا من باید بگم؟ چرا میپرسی؟ یک دفعه برف روخته شد. نه این یه مورد و نمیفهمم. میخوام تو بگی. نمیتونم چرا؟ تندی و تیزی لهنش آثارم میداد و آرامش رو از من میگرفت عصبی گفتم نمیدونم از کوردر رفت با عصبانیت گفت چرا؟ میدونی خوبم میدونی منتها انقدر بچگان است که خودت هم رود نمیشه بگی حرصم گرفت اگر میدانست پس دنبال چی بود؟ چرا میپرسید؟ با پرخاش گفتم آره راست میگی بچگانه است اصلا همه چیز من همینطوره چرا میگی بچگانه؟ بگو راحت بگو اه مگه این چیزی نیست که فکر میکنی؟ یهو انگار بهتش زد مبهود و خیره به من روی تخت سنگی نشست و در حالی که اورنج هایش را به زانوهایش تکیه میداد به موهایش چنگ زد ولی چند لحظه بعد یک دفعه تحملش تمام شد و با صدایی که از خشم درگه شده بود گفت آره دلیل رو کنه نشه گفت یا بچگان است یا احمقانه بعد با پوزخندی تلخ ادامه داد و شاید هم هر دو تو فکر انقدر بچگان است که خودت هم روت نمیشه بگی طوری حرف میزد که معلوم بود به زحمت صدایش را پایین نگه میدارد تا تواند عصبانیت و, و حص و پرخاشی را که تا آن موقع از او ندیده بودم کنترل کند. رکهای گردنش متورم شده بود و صورتش قرمز. رویم را برگرداندم. نمی توانستم اینطور رفتار و حرف زدنش را تحمل کنم. محکم و گزنده گفت: سب کن وای سبرات بگم. تمام این مسخره بازیا به خاطر وجود جواد و سارعی است نیست و به خاطر این فکر احمقانه که فکر می کنی دوستانم سارعی رو ببینم انگار به من برق وصل کردند گفت سریا، نه جواد پس تمام این مدت می دانست و به روی خودش نمی آورد. خون توی مغزم می جوشید و دندانهایم از هرس به هم میخورد و رعشه ای از قذب و عصبانیت استخانهایم را می لرزند آشفته و براف روخته برگشتم و چشم در چشمش دوختم دهانم را باز کردم که حرفی بزنم ولی نتوانستم خشم و بغز و حرص مثل آتش وجودم را می سوزند. دلم میخواست قدرت داشتم چنان فریادی بزنم که گوش هر دوی من را کر کند. از نتوانی و رنج پایم را به زمین کوبیدم پشتم را به او کردم و راه افتادم اونه دنبالم آمد و نه صدایم زد. گیج و خورد قدم بر می داشتم. و مدام این حرفش مثل پتک توی سرم میخورد. دوست دارم سریا را ببینم. پس یعنی تمام این مدت همه چیز را میدانسته. درد مرا میفهمیده و بروی خودش نمیآورده انگار جلوی چشمهایم را بخار گرفته بود تمام خونه تنم به شقیقه هایم فشار میآورد و سرم داشت میترکید. توی این حالت اصلا نفهمیدم که به بقیه نزدیک شدم صدای خسرو که گفت: به وای لیلی آمد خانم پس مجنون گجاست انگار مرا از برزخ بیرون کشید و تا خواستم خودم را جمع و جور کنم و حرفی بزنم آقا رزا قبل از من گفت آهای آقا خسرو چشمم روشن برادر زن منو میگی مجنون خسرو همانطور که دور میشد با صدای بلند گفت والا یه همچین لیلی مجنون شدنم داره محمد که داشت میآمد نگاهی تحقیر آمیز و پر از نفرت به خسرو گرد و از کنارش گذشت و به سمت امیر و جواد رفت همین یک لحظه و یک نگاه ناخداگاه باعث جرقه فکری مسموم و احمقانه در ذهن من شد که فاجعی به عظمت بدبختی یک عمر یا دست کم جوانیم را باعث شد خود به خود یاد لحظه تبریک گفتن خسرو و نگاه تحسین آمیزش و محمد که با ناراحتی مرا توی ماشین هل داده بود افتادم. صدای فاطمه خانم و سرعیا که چاید هاروفه میکردند مرا به خود آورد و مجبور شدم عل رغم طوفان درونم آرام کنارشان بنشینم. محمد را میدیدم که گرم گفتگو با جواد و آقارض است و بیشتر حرص میخوردم. یعنی اصلا ناراحت نیست؟ بالاخره رضا گفت حرکت کنیم و برویم همان جایی که می گفت اسمش آب پریست غذا بخوریم. همه به طرف ماشین ها راه افتادند. محمد همانطور که با جواد هم قدم بود سوئیچ را به طرف امیر پرت کرد و گفت: «امیر من با جواد میام تو ماشین ما رو بیار و رفت همین کارش بود که ذهن از خشم و حسادت کر شده مرا نابیناتر کرد و لجبازی بازی را مثل هیز و میزی را آتش قلبم شغل ورتر از قبل. از طرفی جلوی سارایا و فاطمه خانم و بقیه احساس خجالت و سرفکندگی کردم و حالم بیش از پیش خراب شد. امیر که فهمیده بود موضوع از چه قرار است بی حرف و سخن سوار شد و راه افتادیم. دوران این کلام توی سرم که فکر می کنی دوستارم سرعیه رو ببینم با تلخی آخرین رفتارش جلوی دیگران قلبم را پاره پاره می کرد. بی و در این حال حس تحقیر جلوی دیگران تا عمق وجودم را زخمی کرده بود. به خودم میپیچیدم و درد میکشیدم. دردی نگفتنی دردی که تا آن روز توی عمرم حس نکرده بودم. دو نیروی عظیم توی وجودم سر برداشته بود و مرا له می کرد. قلبی آشق و زخمی که از بیعتنائی و خشم رنج می برد و حس انتقام جویی که شعله کینه را در وجودم شعله بر